گلهای جاویدان برنامه شماره صد hoy e xa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 الهی همه شادی ها بی یاد تو غرور است و همه غم ها با یاد تو سرور این مضمون آبدانه شیرین و لطیف و ساده بیان متفکری است که از پای گذاران نصر مسجه است نصری که قرن ها پس از او سعدی به کمال رسانی الهی همه شادی ها بی یاد تو غرور است و همه غم ها با یاد تو سرور آلا می و می پوشد, همسایه نمی بیند و می خروشد چنان زی که به سنا ارزی و چنان میر که به دعا ارزی چون پیش بزرگی در همه گوش باش چون او سخنگویت تو خاموش اگر بر هوا پری مگسی باشی اگر بر روی آب روی خسی باشی دل به دستار، تا کسی باش هند چیز نشانه سختی است شکری در وقت نعمت بی سبری در وقت مهنت بی در وقت قسمت کاهلی در وقت خدمت بی حرمتی در وقت صحبت دوست را از در بیرون کنند اما از دل بیرون نکنند بیزارم از آن تاعت که مرا به اج بارد، بنده آن محسیتم که مرا به ازرارد. الهی، بیزارم از آن تاعت که مرا به اج بارد، بنده آن محسیتم که مرا به ازرارد. از معاصرین خواجه ابو سعید عبد الخیر البرسلان سلجوقی و خواجه نظام الملک است و به نام خواجه عبد الله انصاری مشهور خواجه عبد الله انصاری از موجدین سبکی است که ضمن نثر شیوا شعری مناسب منظور به کار برند چنانکه شیخ عجل در گلستان به وجهی احسان نمودی بوزگاری او را می جستم خود را می یافتم اکنون خود را می جویم او را می یابم عشق آمد و شد چو خون من در رگ و پوست عشق آمد و شد چو خون من در رگ و پوست تا کرد مرا توهی و پر کرد ز دوست اجزای وجودم همگی دوست گرفت نامیست ز من بر منو. باقی همه اوست <متصفح> اجزای وجودم همگی دوست گرفت نامیست زمن بر من و باقی همه اوست. که خاج عبدالله انساری را حافظه شگفتنگیز بوده و چون به محضر دانشمندان و سخن سرایان در آمد استفازه ها نمون بلعخص از ادراک شایردی و موریدی شیخ عبالحسن خرقانی که از اجله مشایخ قرن پنجون است و پس از او به جانشینیش نایل آمد و به تصانیف و رسالاتی به عربی و فارسی پرداخت زم کلام منازل صایری کتاب الاسرار رساله ارادت و گلندرنامه محبتنامه الهی نامه رساله منقولات و چند رساله دیگر مشهورترین اثر او مناجاتی است که نزد خاص عام معروف است و با سبکی ساده، شیرین، نافذ و دلنگیز تنظیم یافته و از شاهکارهای نصر مسجعه قرن پنجم است. الهی اگر بهش چون چشم و چراغه است بی تو درد و داغ است. الهی میدانی که ناتوانم الهی میدانی که ناتوانم پس از بلا برهانم الهی می پنداشتم که تو را شناختم اکنون آن پنداشته شناخت را در آب انداختم الهی من به حور و قصور نسازم اگر نفسی با تو پردازم از آن هزار به هشت سازم الهی اگر عبدالله را به خواهی گداخت دوزخی دگر باید آلایش او را و اگر به خواهی نواخت بهشتی دیگر باید آسای شعورا بساز کار من و من گر به کردار من دلیده که تاعت هفزون کنن تاعتیده که به بهشت ره کند. الهی اگر مرا در دوزخ کنی، دویدار نیستم اگر در بهشت کنی بی تو خریدار نیستم چه به سم رسید نتواندر دریافت که خاج عبدالله را در حالات ارفانی خاصه در ارفان آبدانه چه مقامی بوده در شریعت استاد و در طریقت پیر محدثی بوده عارفه به دوست از صوفیگریش چه بو که صوفی خود اوست اشق آمد و شد چه خون من در رگ و پوست تا کرد توهی مرا و پرکرد ز دوست اجزاگ وجودم همگی دوست گرفت نامیست ز من بر من و باقی همه اونست عشق تو گخ پست و گهی ماست شدم وزیاد تو گه جه گهی هست شدم در پستی و مستی نگیری دستم یک بار گی نگار از دست شدم Yeah. <laughs> ДОРОГЫ ХУДОВ بامد حاصل یک کا به سوی گتستو یک کعبه دل تا بتوانی زیارت دلها کن کفزونز هزار کعبه آمد یک دل قل بتوانی زیارت دل‌ها کن چفسون از هزار کعبه آمد یک دل A CIDADE NO عشق آمد و شد چخون من درگو پست Oh calto hie Maro yo are you so اجزای وجودم همگی دور و بر منو باغي هموست جو Oh, Oh, oh, oh, you yeah. <laughs> know در اشت تو جا هست تو در اشق تو گه هست و گهی مغز شبه dans joie de te gailler niis Yo yo yo yo yo yo Dar pasti o mustiqar nagiridasda در پستی و مستی بر دستم یک بارگی نگام یک بارگی نگام از دست شدم جام Oh oh oh My name is Dr.улervvi My strength is DR. svoni ziorate del ha ko o kha Albets voni Ziorate del hou kho Khafsum de hizou Khabo maudjek del به نظر ما امروزه مزامین و تشبیه‌ات این رباعیات تازگی نداشته و بکر نیایند. البته باید توجه داشت که خواجه عبدالله از سرایندگان قرن پنجم است. در 396 هجری قمری در هرات چشم به دنیا گشود و پس از سفرهای بسیار و درک صحبت فضلای آن دوران خاص نیشابور به سال 481 خاک مولدش در بر یرفته و نیز شایان توجه است که پس از خاج عبدالله انصاری بسیاری از سرایندگان که اشعارشان بیشتر معروف است چنین مزامین لغات و اصطلاحات را به کار بردن سوز هجر، کعبه دل، هستی و نیستی، دستگیری و از دست شدن گرمی بازار که امروزه از فرد استعمال صورت کلیشه چاپ را پیدا کرده است. ولی اهم از اینکه چنین بدانید و یا چنان پندارید یک چیز مسلم است که نصر او ساده، روان و دارای سجهای لطیفی است که بسیار به مورد به برده شده. و با وجود پرمغزی و جنبه معنوی هیچگون تکلف و تصنعی در آنها محسوس نیست. گفتار منصور او مانند نصر سعدی پس از گذشت نه قرن شیرین و جذاب و قابل درک همگان است الهی اگر به. اون چشمو چرا نگا بی خوی دا ویدور میستو وجان در بهش بی جمول سو خریدو Yeah Das ist ja auch. Oh. ای وای الهی ہمیں شاد ہی ہو بی ود سو the whole Yeah. در بازی، در جوانی مستی و در پیری سستی، پس خدا را کی پرستی این هم گلی بود جاویدان از گلزار عدب ایران، گلی که هرگز نمیرد، شب خوش برنامه که به سم رسید، گلهای جاویدان شماره 119 بود که با شرکت آقایان کسایی، مجد، خالدی، جلیل شهناز، فاخدهی و زبیهی تنظیم گردیده. گویندگان، روشنک و محمد سلطانی